حسود از نعمت حق بخیل است و بنده بیگناه را دشمن می‌دارد مردکی خوش مغز را دیدم رفته در پوستین صاحب جا گفتم ای خاجه گر تو بدبختی مردم نیکبخت را چه گناه علا تا نخواهی بلا بر حسود که آن بخت برگشته خود در بلاست، چهاجت که با او کنی دشمنی که او را چنین دشمنی در قطع است.